بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد نشانها هي قيامتك رخها الدل ولها نزرخنا دل يعني نزرخنا دل جنانت دار أحدث مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم به من خبر دل أظنها بحث ماهي ماه شب اول شب دوم به نظر میاد از بس بزرگ میشه یا بزرگ جلوه پیدا میکنه چنانچه در حدیث ابن مسعود و ابوهریره و انس و انس رضی الله عنهم می سنه فالسحاب ابن مسعود و ابوهریره و انس در معجم تبرانی که البانی هم این احادیث رو تحسین میکنه تحسیس میکنه در سلسله حدیث صحیحه من اختراب الساعة انتفاق الأهلة عذراً شو إنه هاي قيامات ميكه ماهو بذور بس يعني بذور الجلوفيد حديث أو حديثه الله صلى الله عليه وسلم من اختراب الساعة انتفاق الأهلة حتى يرى الهلال للليلة فيقال للليلتين يعني من قد ماهو بذور مشة بذور الجلوفيد ممكن كمها الشباب أقبلوا ماردون بيجان ماهو شاب دعومة این از آن های قیامت هنوز رخ نداده ماها همون سر جاشه ماه وقتی که دیده میشه ماه شب اول هنوز بهاندازه شب دوم نیست هرچند که بحث ماه بعضی یا فکر میکنن آاقخصن وقتی رمضان میشه میرن دنبال ماه ماه نگاه سال یک بار نگاه ماه میکنم من هم تور مونا برای عیدش و برای دفول برای بررمون. خیلی آب نمیشناسن ماه شنا سین. ماه برای خودش حجم داره زمانی داره بستگی داره کی تولو بکنه که وقت تولدش باشه. به اندازه یه وقت تولدش به هنگام غروب غروب خورشید حجم اون ماه و زمانی که توی آسمون میسته بعد از غروب خورشید، به همون اندازه ماه کوچیک و بزرگی داره و مثلا بالفرس شاید ماه صبح ساعت ده تولد بشه به هنگام غروب مثلا هشت ساعت اون داشته باشه یعنی چی؟ تولد بیشه یعنی چی؟ نها کنید ماه وقتی که میگذاره شب اول شب دوم شب سوم ماه که نور نداره از خودش ما از خورشید نورشو میگیره. وقتی که زاویه بین خورشید زمین تو وسط زاویه بین خورشید و زمین واقع بشه نوری برخورد بکنه به اون ماه نور رو منعکس میکنه میفته روی زمین. هنگامی که صفر میشه صفر. زمین وسط ماه هیچ نوری نداره دیگه هیچ نور از خورشید تابش بهش نمیکنه میشه صفر. یک هم که فاصله گرفت میگن بهش تولد. الان شاید مثلا الان تولد بشه به هنگام غروب فردا 20 ساعت عمر داشته باشه ماه بزرگتره. اما اگر فردا صبح تولد بشه به هنگام غروب مثلا ده ساعت عم داشته باشه به نسبت الان اون ماه کچی ما ماه بسیگی داره. ولی خب بحث کلی اینه که ماه مثلا در شب دوم که چل ساعت یا چل هشت ساعت عم داشته باشه معمولا بیشتر و بزرگتر که معمولا بین دو دقیقه تا نیم ساعت تو آسان میسته. بسیگی داره گفتم کی تولد بشه و زمانش عمرش چقدر باشه. ما معمولا ماه شب اول یعنی وقتی که تولد میشه بعد از تولدش معمولا بین بخون مربع همون یک هست تا دو دقیقه این که داره این فقط از قضیه ماه که خیلی روش جر و دعوه ها میشه فقط از بست تولدش برای گفتم بس این ماه شب اولی که یک دقیقه دو دقیقه میمونه که به اندازه مثلا یک تار مو هست خیلی باریکه این ماه میشه بزرگ مثل شب دوم میشه از جمله نشانه های قیامت بحث طلایی هست کوهی اصطلا در عراق رسول الله صلی الله علیه و سلام فرمایلا که قم تا محصر الفرات عن جبل من ذهب فرات دیگه فرات میدید دیگه دو تا های بزرگ توی عراق وقتی که این فرات بیاد از روی یک کوهی عبور بکنه و کش بکنه از زیر خودش از زیر اون الا رودخونه هست از کنار اون الله اعلم یک کوهی اصطلا عن جبل من ذهب يقتتل الناس مردم میرن به جنگ برای دستیابی به اون تلا فیقتل في من كل مئت تسعت و تسعون از هر سن نفر نبدونه نفر کشته میشن و یقول كل رجل منهم لعل اکونو انا الذي انجو هر شخص بیگه شاید من نجات نجاتی باشم و در ربایتی دیگه دارم در سیهین حدیث در بخاری مسلم یوشک ان يحسر عن کنزل من ذهب گنج از سلا فمن حضره فلا یخوذ منه شیابیر در اون زمانی بودید که این گنج بیرون اومد چیزی از اون گنج بر ندارید نریدم به سراغش بعضی ها تعبیر میکنن از این حدیث به این مفهوم که چون اومده به اسم گنج پس نفتم شاملش میشه نفتم یک گنجیه بلاخره فروخته میشه و یکی از معدنی از معادن و خرید و فروش میشه و یک گنجیه در مقابلش میفروشن و بخصوصن عراق معروف دیگه بیشترین نفت دنیا تو منطقه عراق خوزستان و عراق و تو اون منطقه بعضیا چنین تعبیرش کردن گفتن همون نفت سیاه طلای سیاه کنید الفاظ نبوی دقیقه و خبری که دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم هنوز واقع نشده نه حدیث داره میگه رود فرات عبور میکنه از یک جایی بعد از زیر اون رود خونه کوهی بیرون میاد چطور این کوه چرا تا حالا دیده نشد که کوه بزرگی هم هست بعدم از اون خود رسول که دارم میگن عنجه بلیل منذهب روایت دیگه می کنز منذهب گنجی از طلا مشخص میکنه نوع گنج تلاست نفس نیست طلا هست و بعدم مسئله که داره روح میده اینجا اونم این که از هر صد نفر 99 نفر کشته میشن از هر صد نفر 99 نفر کشته میشن الان بعضا میگن بله هنوز کشت و کشتار هست تو عراق کشت و کشتار هست ولی از صد نفر 99 نفر کشته نمیشن درسته برای رسیدن به مال و نمیدونم ثروت و ندارن می‌جنگن همدیگه رو س adam ولی که اون چیزی که در این حدیث هست مقصود دیگر هست الله اعلم و, و جزء نشانه های قیامتی که رخ خواهد داد و اینم باید متوجه بشیم که این گنج با اون گنجی که زیر کعبه هست که اون شخص حبشی میاد اون گنج با از زیر کعبه بینه اون گنج دیگه هست این گنج جزء نشانه های صغراست و اونجا هم جزء کبراه هست حالا بعضی‌ها گفتن بعد از،, بعد از این که ایسا میاد دجار رو زفت میکنه یعجیج و معجیج میان گفتن بعضی ها اون گنج کعبه اون شخص حبشی اون موقع میاد که گنج کعبه رو بیرون میاره اون موقعی که هیچ مؤمنی دیگه روی زمین نیست از جمله نشانه های قیامتی که, که رخ خواهد داد بحث جهجاه یا همون قحطانی هست اس تو که نوارای شقری خدا رحمتش بکنه و قبرش نورانی بکنه بحث جهجاه رو میکنه و قحطانی رو میکنه و خیلی ها به خودشون کشیدن و به خودشون نسبت دادن که ما همون جهجاه هستیم یا ما همون قحطانی هستیم الان میگم چه فتنه ای رخ و چی شد یعنی چی این قضیه قحطانی حدیث ابوهریث هست حدیث عبدالله بن عامر نعاص لا تقوم الساعه حتى يخرج الرجل من قحطان يسوق الناس بعفاه قیامت واقع نمیشه تا یکی از شخصی از قحطان قحطانی های عرب یمن بلند بشه با عصای خودش مردم را تابع خودش بکنه و بعضی‌ها گفته تسلط رو مردم داشته باشه مردم را با عصای خودش ظلم بکنه و اون‌ها رو کتک بزنه و بحث از این یسوف و با عصا بحث ظلم با زور و قدرت و ظلم میاد مردم را تابع خودش میکنه بیعت ازش رو می‌گیره این دو تا تفسیر رو امام به حجر میاره و این شخص هم از موالیه یعنی از کسانی که خودتون بحث موالی کسانی که بعد از جنگ مسلمان میشن برده هستن بعد بردگیشون آزاد میشن ولا دارن نسبت اون من کسی که آزادشون کرده حالا انواع موالی داریم خب این یک از قسمتهایی که اینجا منظور حدیث لا الليل والنهار حتى یملک رجل من الموالي یقال له جهجاه یک شخص از موالی مالک بشه این حدیث جوبر مثلا نقل میکنه چنانچه در صحیح بخاری هست معاویه رضی الله عنه این حدیث رو میشنوه معاویه ناراحت میشه ناراحت میشه بعد الحمد لله تعيش خضرا ميج أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث بعض الأيات ميكونا بحث خروج القحطاني بعض الأيات ميكونا ون أحاديثك ناتو قرآنها تتسون ناتس ولا تؤثر على ص فولائك جهالكم فإياكم ياكم والأمانى بر حزار باشيد ميج ونهار جاهلا بر حزار باشيد از از اين امیدهاي بیخود التي تضل أهلها وأن تساوم بشكل أصحابهم فكر ومتمثث بهم نوع أحادثة ببقل معروف جمراه بشأن هذه نوع أحادثة بعد مؤتد قدس ناقم يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد هذا الأمر يعني أمر الخلافات در قريش كسب ونها دشمنين يكون مجال إلا كبه الله على وجهه مجال إن قدس ناقم سورة قدس ناقم سورة شعف و سورة قدس ناقم وعدة جهنم بوك ما اقام و دین در که دین رو اجراش بکنن اما که دین رو اجراش میکنن بله کسانی میان از موالی و حاکم میشن بحث معاویه ردالله عنه اینه که که داره دین رو تطویق میکنن دین رو اجرا, ب... اجرا گذاشته خب الان چطور جمع بندی بین انکار معاویه و احادیثی که هم ابو هره و هم عبدالله بن عمرو نعاص دران نخ میکنن نها بکنید الان تو این واقعه تو این قصه تو این خبری که بهمون رسیده نقل نشده که که کی به معاویه رسونده این خبر طرف حسابش کیه معاویه رضی الله عنه شکی نیست عبدالله بن عام اصحاب فض احادیث عبدالله بن عمرو بن عاص تا جای که ابورره میگه عبدالله بن عمر میگه کان اعلی مني این كان کان وانا اكتب ما زمان دوناتر بود چون مینی بنویسم من نمینویسم جزء جزء کتاب بود جزء کتاب سنتم بود که رسول بشه اجازه داده هم قرآن هم سنت بنویسه معاوی رضی اللہ عنه احتمال هست اون که حجر میگه رضی اللہ عنه احتمال در این حدیث رو نشدیده باشه و کسانی فتنه انگیز اومدن بر سر زبان خودشون همینطوری گفتن داره روی اونها این کار میکنه خوستن اونهایی که داشتن تحریک میکنن بر علیه معاوی رضی اللہ عنه معاوی بلند میشه میگه اونهایی که خصوصا اینجا بحث امانی رو که میاره قضیه وازع ابن حجر میگه میگه معاویه رنج میبرده از این قضیه کسانی دارم مردم رو تحریک, تحریک میکنن برای خروج بر علی آشوب بر علی حکومت انقلابی میخوان جاد بکنن دلیلشون چیه که بله بعد از بنی غیر از پرش کسانی از قحطان میان با عصای خودشون مردم رو تابع خودشون میکنن پس ام در قریش نیست خصوصا این بحث بحث هست که قحطانی و رسوبات داره خبر میده قحطانی خواهد عمر و مردمم پیرو ایش شد رسول الله ام انکار نکرده ما بی رضی الله عنه نراحت میشه یعنی بحث این که هنوز امر دین هست دین داره اجرا میشه و کسی سرپیچیdone نمیکنه از خدا خداوند خب کسانی الان اومدن شعار میدن و این که داره ظلمی انجام میشه داره نمیدونم حقوق پای مال میشه دنبال اینن که به حکومت برسن میخواد در تمع را ببنده در طمع خروج در طمع به حق داره میخواد ببنده میگه مادامی که عم در قریش است و دین دارن اجرا میکنن کسی نباید بر علی اونها قیام بکنه اگر هم قیام بکنه خداش رو میده چون اینجا هم نمیاد بحث رو نکرده الا به الله علی وجهه مگه خدا من با صورت با صورتش خوئینش بیاره یعنی بزنه به بزن زمینش حالا بحث جهنمش اینجا نشده ولی خب بحث بحث اینه که با خدا طرفه کسی بخواد حاکمی حکم خدا رو اجرا بکنه خلیفه مسلمانا باشه و بعد اونم از قریش باشه و بعد بیاد مخالفت بکنه خداوند با خدا من طرفه خصوصا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم من عادلی ولیا فقط آذنتو بالحرب کسی که با اولیای من بخاط مبارزه بکنه یا بجنگه با من طرفه فقط آذنتو بالحرب و از مسائلی که هست در بحث بحث جهجوه یا قحطانی بحث این نیست که این نوع خلافت خلافت محمودی یعنی خلافت نیکیه تهتانی میاد گفتم ابن حجاب رحمه الله میگه میگه که با عصای خودش مردم را تابع خودش می‌کنه حالا با عصا یعنی با ظلم جور که مردم ازش می‌ترسن یا اینکه نه یا اینکه مردم به فرمانشن هر دو حالت است به فرمانشن به خاطر که آدم خوبی یا اینکه آدم شریه مردم ازش می‌ترسن هر دو حالت هست. سی و هفت سال قبل شخصی بود به اسم جهیمان در مدینه شخص صالحی بود شخص دینداری بود این شیخ زید میگه اساسش این جوهیمان شخص صالح و دینداری بود طوری این شخص صالح بود که مردم را شبها به قیام و تحجد بیدار میکرد حرم جا بود از مردم نمازگذار نماز صبح همه مساجد پر شدن در 37 سال قبل توی مدینه امر معروف نه از منکر چنان اجرا میشد که کسی جرعت نمیکرد یک نمازش فوت بشه اونقدر قد بودن در تک تک خونه ها میزدن صبح میزدن مردم ویدار میکردن به نماز فرا را یهو خواب های دیده شد خوابهایی دیده شد اومدن پیش شیخ و شیخ بن باز و شیخ مقبل واظعی و پیش علمایی که توی مدینه بودن در اون دوران تو شخص در مدینه بود ابتدا اومدن گفتن که ما خواب داریم میبینیم خواب داریم میبینیم که مهدی داره ظهور میکنه و نمی از این حرف بحث قحطانی رو کردن که شخصی میاد از بنی اهل مدینه هم بنی قحطانن و از یمن اومدن و این همون شخص که الان داره با مردم به تابع خودش میکنه و مردم دارن حرفش گوش میدن و میام به شیخ بنباز باز رحمه الله علیه باز میگه این رؤیاهاتون غیر از ذروق چیز دیگه نیست این اینکه داره تکرار میشه رویا و خواب وقتی که تکرار بشه دیگه دروغه شیخ الخالگنی هم میاد میگه همین میگه این فقط توهماته واقعیت نداره دنبال خواب نرید دین با خواب بخ... قرار نیست که دینی و دینداری با خواب ثابت بشه یعنی شخصی بیاد بگه مثل اون چیزی که به یک از ائمه پیش اومد میگه تو خواب دیدم که, که یک شخص یک نوری اومد تو خوابم گفت که من خدای تو هستم دیگه نماز نخون گفت که اگر خدای من بودی دیگه نمیگفتی که خلاف دینت عمل بکنم خداوند تشکر کرده دینش هم کامل علی امطلعت لكم دینکم اقیموا الصلاه را خدا در قرآن گفته بعد الان یک شخص میاد میگه تو خواب نوری دیدم گفت گفت نماز نخون نه دین با خواب علنی نمیشه ما دینمون از خواب نمیگیریم این شخص چی شد؟ در سال 1430 هجری قمری، 400 هجری سال، قبل شد. دوران پادشاهی ملک فهد عربستان. این شخص بهنام میشه با اون اطرافیان و دوستان و رفیقان و اونایی که قول معروف هوادارش بودن، اومدن حرم رو محاصره کردن، اصله تو حرم برداشتن و اومدن یک انقلابی را در حرمی ایجاد کردن. تا اینکه عربستان دیگه متوسل میشه به کماندوز و نمیدونم میان با اسلحه تو حرم که نباید حرم اصلی هم کشیده بشه. ولی خب این قضیه رخداد داد تمامی اون کسانی که که بین این احادیس چسبیده بودن که به این احادیث بودن تمامی اونها کشته میشن نه در طول تاریخ هم همینطوری بوده مثلا مختار برخلاف اون چیزی که تو فیلم ها و افسانه ها تو ایران ازش بزرگ میکنن و بزرگ جلوه میدن یک شخص کذاب و دجالی بوده اونم توی خودمون پیش خودمون مختار اصن قفی بزرگش میکنن اومد به ادعای حب اله و نصرت آلبیت. اومد این شخص که برادر خانم عبدالله بن عمره برادر خانم عبدالله بن عمر خطاب این شخص کذاب، دجال، دروغگو اومد اول ادعای مهدویت کرد گفت که من مهدیه، مهدی زمانم و باید شما تابع من میشید بعد از مهدویت ادعای فیغمبری کرد گفت که من فیغمبر خودم طول تاریخ این قضیه داره رخ میده ما قبلاً گفت که از اشانهای قیامتی که رخ داده کذابونه، دجالونه ادعای نبوت میکنن دروغگانی که ادعای نبوت میکنن ولی خب همیشه قبل از ادعای نبوت ادعای مهدویته مثل غلام میرزا احمد قادانی تو هند ابتدای امرش چی بود ادعا کرد من مهدی موعودم بعد از مهدی گفت من عیسی زمانم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا نبی بعدی حدیث و تحریف یاد لا نبی فی نیست بعد از من گفت که لا من پیانبر الله هستم لا نبی یعنی پیانبر الله پیامبریش بعد از من و خودم دیگه گفته خاتم النبیین، خاتم منظور خط نیست، این انتها نیست، خط نیست انگشتار، منم انگشتار پیامبرانم، انگشتار پیامبران به مراسله اشخاصی صادله هم چی شدن؟ واسه سفری بش خوردن، الانم کانال دارن برای خودشون، توی اسرائیلم برای خودشون پایگاهی دارن، این لیزن همینطور. قبل اونا رو در آغوش گرفتن، به خاطر همین اداهاشون. متمسک شدن به این نوع احادیث. ما ویرد از این امیتاسی که کسانی ساده‌لوح فکر می‌کنن قحطانین همون قحطانی که تو حدیث اومده بعد درحالی که در حدیث بحث خوب بودن و بد بودنش نیست کسانی هست که خودشون فکر میکنن که خودشون همون قحطانین یا خودشون همون مهدی زمانن مهدی زمان اینطوری نیست این سادگی نیست مهدی وقتی ظهور میکنه که اروپا بخواد فتح بشه جنگی بین ما و اروپا بشه بعد از این که اروپا فتح شد بعد دیگه عیسی پایین میاد هنوز مونده که خدا میدونه شاید باشه یک سال بعد یا شاید ده سال بعد ولی الان هنوز هنوز مهدی ظهور نکرده هنوز مهد، مهدی به وجود نیومده و همطور که رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم مهدی رو فضلا در یک شبانه روز می سازه. و بعدا جنگ رو با کفار میشه ست صالح قبلا من گفتم در اولین جلسات ست صالحون رو فیغدرون و یاتونکم تحت 80 غایه قد میکنن اونا پشت 80 تا پرچم میان با شما میجنگن و بعد غد میکنن و بعد یکی از مسلمانان صلیب را میشکنه خیلی قضیه مونده که رومی ها بیان روبرو با ما بجنگن اول با ما همپیمان بشن رومی ها غربی ها بعد که با ما همپیمان بشن غدر بکنن بعد از قد ما دیگه با اونها بجنگیم هنوز صلحی بین ما و نیست هنوز جنگ بین ما و اون این از نشانه های قیامتی که هنوز مونده رخ نداده ان شاء الله نشانه های دیگری که جلسات بعد باین گفت سبحانك اللهم وبحمدك و صلى الله محمد محمد